پنجوم. یک جایی نزدیک میدان شاپور بود تا یک جایی را باید با اتوبوس می رفتیم تا یک جایی هم میشد با موتور رفت از یک جایی به بعد هم دیگر با هیچ هیچی نمیشد رفت حتی پیاده رفتنش هم پدر دربیار بود کوچایی داشت که اگر قرار بود دو نفر همزمان ازش رد بشوند یکیشان ناچار می شد مثل کک پس پسکی برود که راه باز شود وسط همهشان هم یکی یک دانه از این جوب هفتی بود که من فقط از داخل آنها رد می شدم. کسی مجبورم نکرده بود، خودم عشق میکردم که از آنجا رد بشوم اینقدر ردامه دادم تا به آخر پام روی یکیشان سرخ خورد تیز نجامیده بودم خورده بودم زمین و مخ و ملاجم میریخ کف و اسفالت. آدم تازه آنجا میفهمد قدیمی یعنی چه فکر میکنم رکورد ماندگاری توی آن محله ها اقلش 300-400 سالی باشد قیز تمام که سهل از پدرشم توی این محله سپر میاندازد به نظرم اگر کسی بخواد دل درست زندگی کند بعد یک جایان بالاهای بالاهای شهر برای خودش دست و پا کند اما اگر عشقش بکشد که توی یک محله خیلی قدیمی و اصیل باشد شک نکنید که شاپور از قلعه مرغی خیلی بهتر است هوا سرد بود و توی این هیروویر داشت تاریک هم میشد برای همین چاار نداشتم جز اینکه یک بند به جان حسن قور بزنم او هم که هیچ بر روی مبارک خودش نمی آورد و برای خودش جلو جلو میرفت پس حق نگذریم زیاد هم نمیرفت اصلش من کلهشق روی قوز افتاده بودم و کند کرده بودم حسن اسن از سیگار واسه دونخ سیگار بگیریم برگشت من نمیکشم واسه خودت نخ بگیر از کجا بگیرم چه میدونم تو میگی من چه بدونم تو به این محل واردی واردی نمیخوای جلو غصابی وایسایزی سیگار میخوای جلوتر باید یه بقالی چیزی باشه بعد گفت که حق با حسن بود. امروز روز تو هیچ قصاوی سیگار دست آدم نمیدهند. آن هم چه؟ نخی؟ جلوی یک سقا که درست نفش یک میدانگاهی کوچک بود حالی پایم را پیچ دادم که بتوانم زمین بخورم. هم میخواستم سقا خانه رو سیاحت کنم. هم که احتیاج داشتم حسن توجه بیشتری به من بکند. کفری هم کرده بود. سرش را این چی انداخته بود پایین و یا علی از تو مدد اخ! برگشت. آن روز بار دوهم بود که این کار را باهاش می‌کردم دو سه قدم اضافی رو که جلو جلو رفته بود برگشت تا ملتفت اوضاع من بشود چی شدی دوباره خوردم زمین پام پیچید کجاته؟ مچمه رنگ برنگ شده شکسته. اوه روی پنجه پا که پاشناهاش روی زمین نباشد کنارم نشست ببینم چی شدی در رفته ببین در نرفته اوه اونم دیگه تا آخر عمر چلاق شدم کمی با مچپان ور رفت قبل از اینکه که به امشک کند که واقعا توریم شده یا نه جستی زدم و خودم از روی زمین بلند شدم با اینکه که حسن به این اخلاق هم عادت داشت با تعجب براندازم کرد خیلی خوب بهتر شدی بریم دیره باشه سب یه قلب آب از سق خونه بخورم سواب داره جلو رفتم و میده ها رو محکم گرفتم و شروع کردم به دعا کردن. چونان میلاره چنگ زده بودم که انگار جا به جا میخواهم آجت بگیرم. رفته رفته تاقت حسن داشت تاق میشد. یاله عباس! حاجت روای شالله! دست به جنبون! دعا کردم مثل نماز خواندن نیست که اگر وسطش با کسی حرف بزنی فوری باطل شود. اما عمدن جوابش را ندادم. تا اینکه خودش دست به کار شد و مچه دستم را گرفت و کمی تکان داد. عباس! عباس را قامون اینقدر تنگ گوشم وقت زد که سراخر مجبورم کرد که از خیرش بگذرم کوچه ها رو یکی یکی رد شدیم تا رسیدیم به کوچه ای به اسم هاچ صادق راستگو بسن گفتم که یکی از این دوتا اسم کافی بوده و اینکه هر دوتاش یک معنی میدهد. شک دارم جوابی داده باشد. از قرار معلوم مقصد ما ته همین کوچه ای راستگو بود یک خانه آجربهنازی دو طبقه در واقع خانه بالا سری همان پسر هادی بود که برایتان گفته بودم تو یک کار بازاریابی بالا سری ها یک جور رئیسند و از این حیث هر کسی رئیس کس دیگری به حساب میآید الی آخر با اینکه اسمش مجید بود ولی من به دلایلی که خواهم گفت و همین امروز اسکندر صدایش میکنم البته فقط پیش خودم زنگ را که زدیم خودش در رو باز کرد یک پسر زاغول بود که شیرین 23 سال را داشت با موهای تلایی که اگر دو ساعت زودتر رسیده بودیم زیر آفتاب حسابی برقبرق میزد. با اینکه روی تک جلوی در ایستاده بود اما قدش خیلی از هم بلندتر نشده بود. یک خال گوشتی یوغور هم صاف کنج لبش چسبیده بود. اینجور خالها ها بگیر نگیر دارند بعضیا را خوشگل می کند اما توی قیافه بعضیا یا گن خورد یعنی باید به قیافه آدم بیاید که هیچ به این بابا نمیآد. راستی ریشش هم توپی بود. مجید گفت به به به به حسن آقای گل گلاب چطوری؟ خوبم مرسی دیر که نکردیم نه اتفاقا ما هم تازه جلسهمون تموم شدش ایشون باید عباس آقا باشن نه؟ مثل که حسابی اسمی شده بودن هر میرفتم اسمم جلوتر از خودم رفته بود حسن گفت آره عباس آقاست که وسط گفتم اسکندر گفت حالت خوب عباس جان؟ خوش اومدی؟ خوبم. میخوام بریم بالا. بقیه حرف رو اونجا میزنیم. در جریان باشید که هوا کمی سرده. اسکندر بلند بلند خندید. ببخشید. بفرمایید. بفرمایید بالا. بفرمایید. استقبال گرمی از اما به عمل آمد. این رقم استقبال‌ها را فقط وقتی میکنن که خیلی دوستت داشته باشن یا وقتی که ازت حساب میبرند یا اینکه وقتی خیلی احتیاجت دارند. اما هنوز خیلی زود بود که بخوام راجع بهش نظر بدهم. خانهشان از این خانه های جنوبی بود که من ازش متنفرم. انگار که بخواهن حیاتشان را از دیدرس دور کنن، عدل میبرند، ته خانه کار میگذارند. بیشتر دوست دارم که خانه با حیات شروع شود تا با راه رو و راه پله و اینجور چیزها. پله های مکت کرده و بدون نردهی از سمت چپ رفت و میرفت تا به یک اتاق کوچک در طبقه بالایی برسد. وای خدا جان، بعضی از این معمارها چقدر کودنند. باورتان نمی اگر بگویم برای رفتن به یک آلونک نهده متری سی و هفت تا پله کار گذاشته بودند. حالا همین یکی بود. توی پاگرد هم یک دستشویه تمام شیشهی در آورده بودند. شیشه مات. کفم برید. حرف من این است که اسم پاگرد رویش هست. برای استراحت هست. نمسترا. دستشویی مثل آشپسخانه نیست که بشود شیشه یا اوپن درش آورد. با اینکه ها جز این که به همان دخنیه بالا بالاخانه برسند چاره دیگری نداشتند، اسکندر دست کم هزار بار گفت: بفرمایید از این طرفه، بفرمایید از اینجا داخل اتاق بفرمایید. داخل اتاق هم که برای خودش محشری بود. بازار شامی درست کرده بودند که بیا و تماشا کن. معلوم بود که به مناسبت ورود ما خیلی سر مرتب شده است. تهمت نمی‌زنم. های گوله شده پشت در اتاق را هم که قلم بگیریم یک هوله پالتویی و دو تا بلوز روی صندلی چرخان و اتاق ولو بود. تفاله های چای هم که از شدت ماندگی مثل مگس مرده به دیوارهای یک استکان شیشه روی میز چسبیده بود و چند تا چیز دیگر. نگفته معلوم بود که اتاق مجردی اسکندر است. باید از همان جوراب های کثیف آن روز هادی حدس می زدم که اینها دقیقا دقیقاً چه جور آدم های نکباتی به یک سمت دیوار یک تخت یک نفری آهنی تکیه داده شده بود. دیوار روبروی تخت درست از زیر سخت تا دم قرنیز چونان ترک بزرگی برداشته بود که نگو. کمی هم از کنار پنجره مشرف کوچه شکم داده بود. یک کامپیوتر نوی خیلی عالی هم به همان دیوار تکیه داده شده بود که به آن ترک بی غواره منظره مسخره ای درست کرده بود. حالا روز خانه را که می دیدی فکر می کردی اگر تشنت شد باید با کوزه آب بخوری یا توی مستراحشان با آفتاب بگیری. اما از آن طرف یک سری وسایل هم داشتند که به خانهشان که سهل است به محلهشان هم نمی آمد. یک ریشتراش ستیغه ژیلت روی کتابخانه بود که حد دقل کلی پول بالاش رفته بود. اصل اصل، یا همون کامپیوتر یا بعضی لباسهاشان که به چوب آویزان بود چیزهای گرانی بودند. سرجم قشنگ معلوم بود که دارند آرام آرام به یک آبانانی می رسند. من آدم زیاد حسودی نیستم، اما از اینکه کسی درست بقل گوشم، برای خودش این همه چیزهای گرانگران گران به هم بزند، می ترکم. در نگاه اول که توی اتاق، اثری از آثار لاله نبود. عوضش هفت تا جوان قد و سبیل تا سبیل وایستاده بودند که باید همهشان را از می بوسیدم. بوسیدم. فقط از صورت خود اسکندر کمی هست کردم وگرنه بقیه اشان که بلا تحریش داشتند. روبوسی با این افراد در مهمانی ها آدم را حسابی ناسور میکنند. فقط دوتا تا صندلی چرخان برای نشستن توی اتاق بود که دیر می جا نصیب شغال میشد جسدم روی یکیش نشستم. اسکندر همچون حدا و گل داشت آن یکی رو برای خودش برداشت بقیه هم روی تخت و زمین ولو شدند. اسکندر کف دستهاش رو به هم مالید و با لبخند ازم پرسید: «خب آقا عباس با جمع آشنایی داری یا نه؟ اسم من از آن اسمانیست که بشود آقاش رو هر دو طرفش آورد. درستش عباس آقاست. گفتم شما که مجیدی حسن و حادی و هم مثل کفه دست میشناسم. لاله خانومم که قبلا دیده بودم ولی مثل اینکه نیستن الان. نیمدن؟ آقای مجید رو میشود هر دو طرفش گذاشت که من از بیخ قیدش رو زدم. آره من مجیدم ایشون سروش؟ هادی رو که گفتی میشنستی جواد باغیر ایشون هم دوباره جواده جواد دو <تصفيق> انگار که چیز خندداری در میان بوده باشد همهشان خندیدند نه از طریق دلها بی در بی خود هادی دنبال حرف اسکندر را گرفت آخه ما دوتا جواد داریم واسه خاطر همین جواد بستانی و که دیرتر به جمعمون وارد شده جواد دو صداش میکنیم جواد دو گو شوع عباس است که اول و دوم داشته باشد با این کارها مثلا داشتن خودشان را صمیمی جلوه میدادند توجه داشته باشید که هیچکس مساله لاله را به روی مبارک خودش نیاورد حداقل نصف اینهایی که اسمشان را گفت درست پشت سر من نشسته بود و من اصلا برنگشتم نگاهشان کنم اگر لازم بود مجبور میشد دوباره به معارفه ایشان کنم عوضش سرم را بالا گرفته بودم و مثل شوتاری که نالوندش را دیده در و دیوار را میپاییدم دکتر گروهی می گفت این جور کارهام یک جور واکنش عصبی است حتی دفعه آخری به مامان گفته بود که این واکنش ها در من به محدوده خطر نزدیک شده است حالا که نمی شود ولی از خدمت شما که خلاص بشوم باید دوباره یک وقت ازش بگیرم ببینم مضیر دهنش چیست همان همان شد خودشان با خودشان شروع کردن به حرهکرره هره کردن نشان به آن نشان که دیگر کسی طرفم نیامد میخواستن وانمود کنند بدون من هم کارشان راه میفتند حرف درست حسابی هم که نمی زدند بیشتر داشتم برای هم قپی در میکردند همش حرف از درآمدهای هفتگی و ورودی و خروجی و تعادل و از این چیزها بود و هم یکی در میان خارجکی پرتاب میکردند که معنی هیچ کدامشان رو ملتفت نشدم حتی همان اسمای خشک و خالیش هم به یادم نمانده است وگرنه یعنی دلیلی دلیل نداشت که از گفتنش به شما تفره بروم. همین جور تکه خنک بود که به هم حواله میدادند. فقط یک بار جواد دو نمیدانم سر چی شطرق زد پخ کله حسن که کار خیلی خوبی بود. وگرنه نه همان چیزهای کسر کننده ای بود که گفتم. من هم که چندان اعتراضی نداشتم. تازه پیازم کونه کرده بود و مثل شاخ شمشاد برای خودم نشسته بودم. فقط یک بار قایمکی یک ابرو به حسن انداختم که لاچش را تحویلم داد. اگر دیوار خانه همچه ترک وحشتناکی نداشت شاید چند دقیقه دیگر هم به میل خودم جیک نمیزدم اما دیوار خانه ترک وحشتناکی داشت. مجی جان اون ترک روی دیوار قضیهش چیه؟ اسکندر روی سندریش خم شده بود و داشت با سروش صحبت میکرد. حرفش را نیمه گذاشت و گفت کدوم؟ انگار که دارم راجع به جای سراخه میخرف میزنم. با دست به ترک دیوار اشاره کردم که به نظرم اصلاً لازم نبود. آه، آره، ترک رو میگی؟ کار بابامه. نیش سروش بیماحتلی باز شد. اسکندر ادامه داد. قبلا یه ستون اینجا بودش. بابام میخواست خونه دلبازتر بشه. کلکش رو کند. باحال شده نه؟ دلباستر شده. حالم خراب شد. پسر کلن از مخ ماف بود. از نظر مهندسی حتی وقتی که میخوان خانه ای رو بکوبند ستون آخرین چیزی است که باید بهش حمله کرد حالا این مغز خرخورده تازه داشت به کار بابای مشنگش افتخار هم می کرد. اما واقعا شما از کسی که توالت خانه را تمام قد شیشهی در میآورد چه انتظاری دارید گفتم حالا یه وقت بی هوا رو سرمون هفار نشه سقف یا دیوار با پروی پر همین را پرسید سقف یا دیوار من دیگر ادامه ندادم سروش به شوخی به اسکندر گفت هیچ کدوم بابا میگه <تصفيق> نه محکمه چیش نمیشه الان سه سال میشه که برش داشته نیست باغیر باغیر بچه محل اسکندر بود از بچگی باش بزرگ شده بود آره ا ا ا ا ا ا ا ا اگه میخواست می می می می ورشد تا حالا شده بود دلغک بازی در نمی آور. تفلکی لکنت زبان داشت. اگر به خودم بود یک کلمه دیگر با این حالو و دهم به دهن نمیگذاشتم. ولی همش هم دست من نبود. وقتی یک بازاریا پیاد پیت می از سایم قدر دوست دارد که از هر رایی که می بعد باد اختلاط کند. اصلا اینها از همین راه نان میخورند. فقط حوصلم کم کم داشت سر میرفت جوور هم که حساب می کردید، اگر لاله در کار بود تا حالا باید پیداش میشد. اصلا هم که روی تخت کی سروش روش نشسته بود نمیشد دو کرم باش حرف زد. بعدی یک کار این بود که اگر 40 ساعت هم میخ جلوشان بنشینی یک چکه آب دست آدم نمیدهند. باورتان نمیشود اگر بگویم که این هم برای خودش یک قانون بود. که چون به نفع جیبشان تمام میشد خیلی هم سفت و سخت پاش وایستاده بودند. فکر میکنم دلیل اصلیش این است که اینها نمیخواهند دیگر را نمک گیر کنند تا برای روز مبادا زیر بریته هم نباشند. اینقدر لال نشستم که به اسمش حسین بود. از هادی خیلی سیاهتر بود ولی عجیب است که عوض این یکی چرا اسم هادی را بلک گذاشته بودند. یک جلزقه کارگردانی تنش بود با یک ساعت دیواری که صاف روی مچش بسته بود. خیلی هم لاغر و قدکوتا. خیلی که گفتم مربوط به لاغریش بود نه به کوتاهی قدش. تحریش هم که گفتم غیر از اسکندر همهشان داشتند. جوری که معلوم نبود دارد از من میپرسد یا کی گفت؟ عباس آقا برای خرید اومدن؟ تلهaje شدید ترکی داشت از همین یک جمله که حرف زد متوجه شدم گفتم با منی بله یعنی چیزی باید بخرم سروش جواب داد آره برای رجیستر کردن اسمت باید یکی از پروداکت های کمپانی رو بخری حالا یا گلد یا سیلور یا وکیشن فرقی نمیکنه همونایی که توی جلسه پرزنت راجعش شنیدی یک کلمه از چیزایی که این بچه مزلف گفت قبلا به گوشم نخورده بود گفتم نه به کسی چیزی به من نگفته حسین شاخ درآورد به بهم گفت مگه پریزن نشدی؟ پرزنت چی بود دوباره؟ همون جلسه معرفی کار مگه کار بهت معرفی نشده؟ میمیرن دو کلمه به زبان آدمیزاد حرف بزنند گفتم چرا شدم؟ پس رازه به خرید از کمپانی میدونی؟ نه به چدم پر, پر رو گفتم نه نه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ کی ایشونو رو پریزن کرده؟ لحنش مثل بازجوها بود و من ساده آن موقع نمیدانستم که از نظر کاری بعد از اسکندر او نفر دوم گروه است. ابرز از اینکه چشم چشمم رو از حدق در بیاورد حسن فوری گفت پرزنتورش هادی بوده قصه سرش رو, رو به هادی چرخاند. دنوز وقت نکرده بود لب از لب باز کند که هادی گفت چرا دیگه عواز جان همون قضیه پونس هزار تومن و بانک و بینز و اینا. حرفی نزدم ادامه داد. که میخواستی باش جیگرکی زیر پلهی بزنی دیگه؟ این را که گفت دوست نفرشان زیر جلکی خندیدند. ناکس همش رو هم مو به مو از بر بود. گفتم هان همون روزی که لاله اومد اوم ولی اونجا صحبت از کمپانی نشد. حرف از شرکتی بود که لاله با یه اومده بود. فرقی نمیکنه. مگر میشه کمپانی با شرکت فرق نکنه؟ کمپانی کمپانی شرکت هم شرکته. جده مگر میشود کمپانی با شرکت فرق نکند. کمپانی کمپانیست، شرکت هم شرکت. سروش گفت. حالا خیلی مهم نیست. اون چیزی که ایمپورتنته خریدی پرو بعد از کمپانی محصول بخری. گفتم، خب اینا رو من الان فهمیدم. مثل سگ چاخان میکردم. حسن که خیالش راحت شده بود گفت، خب، الان برنامه چیه؟ برنامه واسه چی چیه؟ واسه ورود. توی صورتش براخ شدم و گفتم، ورود به کجا؟ منظورم خریده. ولی من قبلا با حسن در موردش حرف زدم. در مورد چی؟ ببین من نمیتونم از اتون چیزی بخرم شاید یه روزی بتونم ولی حداقلش الان نمیشه خوب جوری ناکش را چیدم فکر اینجاشو نکرده بود سگر ماهاش رو تو هم کشیدو و گفت مگه مشکلی وجود داره؟ حرفی، سوالی مطلبی چیزی هست که بخوای بیشتر در موردش بدونی؟ ما کمکت میکنیم نه یه کلمه گفتم نه پس چی؟ هیچی اینه که چرا وارد نمیشی؟ از بس که نمیتونم واردشم. خون توی صورتش دوید. حسین لاغر بود اما مردنی نبود. به قیافش هم نمیخورد که اعصاب درست و درمانی داشته باشد. اگر اینها بازاریاب نبودند و آن همه قوانین محترمانه برای خودشان نداشتند، شرط نبود که آنطور تخص بازی در بیاورم. من خودم بچه‌ی غله هم اما بچه شاپور هم کم کل خر نیستند. حسین نگاهی زیرچشمی به سروش انداخت. چون بیشتر از آن دیگر عصب سر و کله زدن با من را نداشت. سروش گفت: حالا گذشته از شوخی، هنوز آنوز تو نگرفتی؟ معلوم بود که هیچ کدام از حرفهایم را جدی نگرفته است. برای همین جوابش را ندادم. سروش هم صد بدتر از اسکندر عقلش از عقب می‌آمد. سر و ریختش مثل هادی و حسین عجب و وجق نبود. موهای اتو کشیده ای بلندی داشت به اندازه‌ای که ازش به دل نگیرم از من بلندتر بود. اگر گوشه ساکت می‌نشست مهمترین ویژگیش همین موهای بلندش بود ولی اگر دوستش حرف بزند فک خرگوشیش بیشتر به چشم می‌آمد کلاً از اینهایی بود که یک دانش برای هر جمعی خوب است من گفتم که عقلش از عقب می‌آمد یادم نیست چه حرفهایی زد و چقدر حرفش فایده کرد فقط آخرش گفت تو اینجوری فکر نمی‌کنی کاری با جور فکر کردن من نداشت بازاریابها هر چند دقیقه یک بار با این سالها 4 تا آدم را پاره می‌کرد اگر خاطرتان باشد شگرد و هادی هم همینطور بود. چیزی نگفتم، دوباره سالش را تکرار کرد. ها؟ اینجوری فکرته نمیکنی؟ توی صورتم بور شده بود ببیند که حرفهاش اثر کردی یا نه. گفتم: "راجب چی؟" به جای اینکه حداقل بحث به این مهمی را به یک سرانجامی برساند، کمی عقبتر رفت، هاش را پشت سر روی تخت ستون کرد و زل زد به سقف. معلوم نبود این چه عده که پسر شیرین اغل از خودش در میآورد. که تا آن لحظه لام تا کام حرف نزده بود گفت را را را راجب پیش رفت حرکت به جلو آزادی مالی یک دقیقه راحت هم نمی گذاشتند. وضعیت خیلی کسافتی شده بود. یک به سرم زد که دوباره حواسشون رو به ترک روی دیوار پرت کنم اما زیاد نمیشد روی موفقیتش حساب کرد هر جفنگی که میگفتم ممکن بود 400 500 هزار تومان برایم آب بخورد اما باز من خودم را از تکوتا نینداختم گفتم شما مطمئنید؟ حتی معلوم نبود از کی دارم میپرسم اما چون باغر نوتخه آخر را ایراد کرده بود خودش جوابم را داد از چی همون حرکت به سوی آزادی مالی و پیشرفت و آینده روشن روحش هم از آینده روشن خبر نداشت از خودم در آوردم بله که مطمئنم تک تک کسایی که تو توی این اتاق نشستن هم مثل من فکر میکنن با پایه کار ما ایمان و اعتماد متقابله کار ما مثل ناموس ماست در واقع این برای ما اصلا یک کار نیست یه ایده است یه استراتشیه یه یه جور سب سبک زندگی این کار رو ما برای فردا انتخاب کردیم کاری که به زودی چهره زمین رو تغییر میده به نازم. آفرین جدن خوشم آمد اگر هم کسی چیزی بلغور میکند اینطوری طوری نه مثل آن حسن و سروش ابله که حرفایی به آن خوبی را شهید میکنند به اسمم قسم اگر زبان این پسره نمیگرفت کولاک میکرد حرفش که تمام شد دوباره جف زنگین شد انگار که لنگ یک بله یا نه من باشند چاره‌ای هم نبود به آخره که باید یک حرفی میزدم. با احتیاط گفتم شما همتون همین همینطوری فکر میکنید؟ عجب حرفی زدم پسر کاری کردم کارستان با این حرفم همه را را سر ذوق آوردم گویی که تا یک قدمی موفقیت نهایی آمده باشند ولوله ای شد نگفتنی یک چیزی میگویم یک چیزی می‌شنوید به نوبت و بی‌نوبت راجع به اینکه چه جور ایمان و اعتقادی به کارشان دارند و راجی کرد. حالا هادی را ندیدید چونان شوری برش داشته بود که حرفش نزدنی بود وسط آن خری با صدای بلند گفت همه با همه سوی گلهای پیروزی این را که نگفت نیشم تا پس کلم باز شد این خنده صاب مردم همیشه اینجور بیموقع می آید. هرچه لبم را گاز گرفتم که پقم نترکت نشد اما عین خیالشان نبود پشتش گذاشته بودن که شبانه از من یک بازارگابه تمام ایار د حالا توی این هاگیر و واگیر کله حسن هم داغ شد. حسن گفت: بعد از ورود به این سیستم تنها نیستی، همونطور که ما نیستیم. همه ما تا رسیدن به موفقیت نهایی ازت پشتیبانی می‌کنیم. و فلان و بهمان. اگر صبر می کردم لابد اسکندر پشت بنداش درمیآمد که همه برای یکی، یکی برای همه. یک بارگی گفتم: به هر حال من نظرات شما رو شنیدم. خیلی عالی حرف زدید، اما این مسئله احتیاج به بحث و بررسی بیشتر داره. باید از جنبههای مختلفی روش فکر کرد فرصت میخوام که یک چند ماهی روش فکر کنم. انگاری که یک پیت آب سرد را روی هیکلشان ول کرده باشی اینجوریش را دیگر ندیده بودند برای چند لحظه جیک نزدند ادامه دادم نمیتونم که بیگدار با آب بزنم فرقی نکرد شک ندارم که حال همهشان به یک اندازه ازم به هم میخوررد. حسن زودتر از بقیه گوشی دستشانم و هر حال او آنجا برای خودش آبرویی دست و پا کرده بود و من آدمیم که هر لحظه ممکن است او را رسوای خواصم کنم در مورد من جدا چنین خیالی دارد. اسکندر شروع کرده بود به خلال کردن دندانهاش که با وجود آن همه فاصله بینشان کار بی خودی به نظر می رسید. تا آمد دهانش را به جنبانند مثل فنر از جا پریدم. از اینکه امروز این همه وقت برایم هم گذاشتید ممنونم ما دیگه باید بریم آب پاکی رو به خیکشان بستم. این همه نشخار نکرده بودم که حالا این جواب را از من تحویل بگیرند. اما چاره چه بود؟ من به شرط آنجا رفته بودم و حداقل حسن یکی از این مسئله با خبر بود. قبل از اینکه سر بحث دوباره از سوراخ دیگری باز شود دستم را به طرف اسکندر دراز کردم. قیافش جور خاصی شده بود نه اینکه بگویم خشکش زده بود یا بخ کرده بود ولی جوری هم نبود که اگر بتواند یک جفت چک افسری توی گوشم بزند نزند. دستش را خیلی آرام و سر جلو آورد سر بقیهم تقریبا همچه عدایی آوردم که بتوانم هرچه سریعتر بنکن کنم. هنوز به دم در اتاق هم نرسیده بودم که اسکندر دنبال سرم راه افتاد. صبر کن و اگر یک کلمه دیگر حرف میزد صاف و کنده بهش هشدار می دادم که دیگر حاضر نیستم هیچ حرفی را بشنوم و اینکه خودم درباره این موفقیت نهایی تصمیم نهایی را خواهم گرفت ولی وقتی که دیدم آمده یا الله بگوید که شرم را بکنم من هم دیگر چیزی نگفتم نخد نخد کردم و خلاص پسر در رفتم پسر بیرون خانه هوا تاریک شده بود و یک کمکی هم سرد کرده بود روی آن صندلی چرخان با آن چرم تقلبی قزمیتش پشتم حسابی عرق کرده بود و این مسئله باعث می شود که آدم فوری گرماچا شود نصف بیشتر مردم جهان به همین دلیل پیش و پا افتاده می کنند. یک چیز دیگری هم که خیلی جالب توجه بود این بود که کوچه حاج صادق راستگو از این طرف در رو نداشت و آمدنه من هیچ بهش دقت نکرده بودم برای لحظه احساس تنهایی کردم دوست داشتم اوتی چیزی را شوت کنم خیلی محکم که نه میلم کشیده بود که یک مسیری را زنان با یک قوطی خالی بروم اما آن موقع شب قوطی کدام گور سیاه پیدا میشد فقط اقبالم بلند بود که یک سنگ ریز جستم آن هم که با همون اولین شود قیویش زد. هنوز سر کوچه نرسیده حسن داد زد. عباس! عباس! برگشتم. وایسا. پاک حسن را یادم رفته بود. جوری به سمتم دوید که به نظرم آمد زیر جلدش رفتن که به جانم بیفتد و رأیم را بزند که برگردم. با اینکه از نظر زمانی جدا وقت زیادی برای این کار نداشتند، اما باز نمیشد اطمینان کرد. درس بزرگی که از زندگی آموختم این است که هیچ وقت نباید یک بازار یاب را دست کم گرفت. برای آنها دو دقیقه هم دو دقیقه است. صبر کردم حسن رسید. گفتم: شهرمنده رفیق، اصلا حواسم به تو نبود. عصر بدتر از گناه را ببین." حسن جوابم را نداد. نه برای لجبازی، بیشتر برای اینکه این رقم حرفها همیشه هم جواب ندارند. اما ممکن بود خودش بخواد سوال پیچم. کنه. اصلا اینکه که این چه کاری بود کردی پسر پاک آبرومونو بردی که اون چه دریوریایی بود که سرهم هم کردی اصلا ببینم تو را سنه که دیوارشون ترک داری یا نه این چیزا به تو چه از خربازی درمیاری تازه نیشه تو برنگوشت باز میکنی که چی داشتم توی ذهنم جواب این سوالها رو حاضر میکردم که خیلی ناگهانی گفت خیلی خریحب باس آشغال. با این حرفش همه رشتان پنبه شد حتی نشد که در مورد قوالی که راجب حضور لاله به هم داده بود حرفی پیش بکشم. تا خود خانم هیچ هیچی به صدا از سنگ در آمد که از ما نه. سراخر هم سر آخر هم سرکوچه خیلی بیروح از هم جدا شد منظورم این است که خداحافظی من روح نداشت